سلام از و ما محرم این کعبه و مبهوت تماشا همه قصره تو دریا, دریا همه خار و تو سوره گل ها توی دلبر دلها تو درمان, درمان تو دو دو دوای فقیریم فقیری فقیری فقیری آقا فقیری عشق است فقیری بردن. که تو حج فقرای و ما و خسد جوی تو هستیم رضاجان نه فقط ما نه فقط ما بردن. که گدای کرم توست هزاران چو سلیمان و عجب نیست اگر موسی امران به میان حرم تو به شود خادم و دربان و عجب نیست ز عشق تو شود آتش دوزخت شو گلستان و عجب نیست که جبریل امین خواهد که در کفچگنت را ببرد بحر تبرک به جنان و عجب نیست ز عشق تو شود کفر مسلمان عجب این که با این جبر شده ای زامن آهوی بیابان و عجب نیست که با این جبرو زد شده ای زامن آهوی بیابان عجب این که با این جبرو زد شده ای زامن آهوی بیابان و عجب نیست همان آهوی وحشی که تو زامن شدی از لطف و کرامت شبد زامن مردم به قیامت سلام ای پسر حضرت زهر تو ای شاه و امیرم حرف دل بزنین دیگه توی شاه و امیرم بود آرزویم بوسی از روی زریه تو بگیرم خوب و همان لحظه بمیرم که آرام شود این دل زارم همه دارو ندارم و من زاهر کوی تو شدم تا که بیای به دم و کنارم و یا پا بگذاری به مزارم اگر من این مایه ندارم خودم میدونم اگر چه که من این مایه ندارم ولی کاش بیایی و دو دستم بروی روی سینه گذارم و سر از خاک برارم و بگویم به تو ای صاحب دلها سلام ای پسر حضرت زهران سلام ای پسر حضرت زهران دیدم همه جا بردر و دیوار حریمت جایی ننوشت است گناهکار نیاید سلطان علی موسر سلطان همه همه همه سلطان علی